آیا از افسردگی رنج می‌برید؟ آیا در تنظیم روابط خود با دیگران دو مشکل هستید؟ آیا... درمو هم بگوییم نگه همش را تو گفتیم چشمه فرمایید. آیا در روابطه زندگانی خودتان مشکلی دارید؟ چه مشکلی داره؟ به روانیت بگوید که چه مرگتانه دفتر مشاوری روانشنسی حاجقا دکتر این دل مومنین با سالها سابقه در خدمت شماست رفع مشکل افسردگی در آقایان با پیشرفته ترین متود سیغ درمانه درمان کلیه ی اختلالت روانی مانند وزواست پرخاشگری و ترس با دعاها و ذکرهای مخصوص درمان کلیه اختلالات رفتاری بچه از شب ادراری تا روز ادراری با متود توسری و چوب و فلک کلن یک میزنیم بچه تان بشه دید. حل مشکلات زناشوی و مشکلات زوجهای جوان با منبر خصوصی احکام در خانواده همین امروز بیاید ثبت نام کنید دیگه پیش این ربونشناس های فاسد که درسهای های غربی ها رو خوندن نرید دبای درد شما، دنیا و آخرت شما، همه چیز شما در دست روحانیت ها. بیاید اینجا، تفضل، تفضل دفتر مشاوری حاجاغا دکتر اندل مومنین بهتر از هر روانشن روی زمین احسنت، احسنت، خواهر غناری